اثر توماس مال ترجمه حسن نکورو با صدای آرمان سلطانزاده تهیه کننده دامون آزری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری موسسه انتشارات نگاه گوستاو آشنباخ یا آنگونه که او را از جشن پنجاه همین سال تولدش رسمن می فون آشنباخ در بعد از ظهر روزی از بهار سال هزار اندی که برای چندمین ماه به قاره ما چهرهی خطرناک نشان داد از منزلش در خیابان پرینس رگنت مونیخ برای گردشی نسبتاً طولانی به راه افتاد با اعصاب خسته از کار پیش از ظهر، کاری سخت و خطیر که همینک بیشترین احتیاط مراقبت و پشتکار را با ارادهی خستگی ناپذیر ایجاب میکرد. نتوانسته بود پس از صرف نهار نیز جلوی ادامه گردش چرخ آفرینندگی درون را آن متوس آنیمی کنتینوس که به گفته سیسرو اساس سخنوری بدان بستگی دارد بگیرد و با خواب بعد از ظهر که با تحلیل روزافزون نیرویش روزی یک بار در میان کار روزانه ضرورت حتمی میافت، خستگی کار را از تنش بدر کند. این بود که پس از خوردن چای از خانه بیرون رفته بود. به این امید که حرکت در هوای آزاد توان کار را به او بازگرداند و شبی سمربار به او عطا کند. آغاز ماه مه بود و پس از هفته‌ها سرما و بارندگی تابستانی زودرس از راه رسیده بود باغ انگلیسی با آنکه هنوز برگ ناب تن داشت هوای گرفته یادآور ماه اوت بود و در زل نزدیک شهر از درشکه و مردمی که به گشت و گذار آمده بودند موج میزد آشنباخ که از راه های خلوت و خاموشی تا جایگاه دشتبان رفته بود برای مدتی در بهر باغچه جلوی کافه که چند درگ و کالسک کنارش نگه داشته بودند و میهمانان محلیاش را از آنجا در آن آفتاب روبه افول از میان دشت راه بازگشت را در پیش گرفت و از آنجا که احساس خستگی میکرد و در ناحیه فورینگ احتمال باد و باران میرفت منتظر تراموا شد که در مسیر مستقیم او را به شهر می رسند. تصادفاً ایستگاه و اطراف آن از مردم تهی بود نه در خیابان اونگر که بر سنگ فرش کف آن ریل‌های تراموا در تنهایی خود برق زنان دستها را به سوی شابینگ دراز کرده بودند و نه در خیابان فورینگ وسیله نقلیه‌ای به چشم نمی‌خورد پشت نرده های سنگ تراشیها که صلیب‌ها سنگهای گور و تندیسهای یاد بود گورستان دومی برپا کرده بودند جنبندهی نبود و بنای بیزانسی نمازخانی مقابل در نور پرید رنگ پیش از غروب قرق در سکوت بود کتیبه تالار علاوه بر سلیبهای یونانی و نقوش انجیدی که با رنگهای روشن خود تزیینش میکردند نوشتههایی را به خط متقارن با حروف زرین دربر میگرفت سخنانی گزیده از کتاب مقدس در ارتباط با دنیای دیگر همچون به منزلگه خداوند روانه اند یا روشنایی جاوید بر آنها و این منتظر را چون به خود آمد از این چند دقیقه خواندن جملات و عبارات و سیر دادن نگاه در عرفانی که در آنها جلوه بود جمعیت خاطری دست داده بود که در ایوان بالای سر حیوانهای انجیلی که از پله های بیرون تالار پاسداری میکردند، متوجه مردی شود، که سر و سرووزع نچندان آدیش افکار او را جهت دیگری می بخشید. معلوم نبود که این مرد از در بزرگ برونزی از تالار بیرون آمده یا از بیرون به اینجا و از پله ها به آن بالا رفته است. آشنباخ بدون آنکه چندان در این موضوع قور کند، تمایلش به قبول حدث نخست بود مرد قد نسبتاً بلند و صورت بدون ریش و بینی پخی داشت که جلب نظر می کرد. و از زمره مردم سرخمو بود با پوست شیری رنگشان که پوشیده از کک و مک است ظاهراً اصلاً از نژاد باواریایی نبود چنان که دستکم کلاه الیافی ابریشمینی که با لبه پهن و صاف سرش را پوشانده بود، او را شکل و شمایل بیگانی از راه دور آمده بخشیده بود. البته او کول پشتی معمول این نواهی را به شانههایش آویخته بود. لباس کمرداری ظاهرا از جنس کرباس به و بارانی بر ساعد چپش انداخته بود که حائل شکمش گرفته بود. و در دست راستش اصایی مجهز به نوک فلزی بود که اریب به زمین زده بود. و بر خمیدگی دستش لنبر خود را تکیه داده بود. در حالی که پاها را بر هم انداخته بود، سر را بالا گرفته بود. چندان که از گردنش که از پیراهن آزاد اسپورت سر کشیده بود سیب آدم بیرون زده بود و با چشمان بیرنگ از زیر مژگان قرمز به دور دست می نگریست. چشمانی با دو شیار عمودی که از میانشان سر بلند کرده بود و این چونین شاید هم این از تأثیر جایگاه بلندی بود که بران ایستاده بود و از آن برتری میافت. او را حالتی بود از حاکمیت و تفوق. حالتی بی و حتی خشونت هامیز. چون خواه از آفتاب خیره کننده غروب قیافش چون این شکلی به خود گرفته بود. خواه این قیافه همیشگیش بود که از وضع استخانبندی صورتش به دست آمده بود لبهایش کوتاه می‌نمود. لب‌هایی لبهایی که تا بالای دندان عقب رفته بود به گونه ای که دندانهایش تا لسه بیرون افتاده سفید و دراز از میانشان خودنمایی می کردند. به خوبی امکان دارد که آشنباخ در جریان برانداز کردن مرد بیگانه که نیمی از روی بیخیالی و نیمی از روی کنچکاوی صورت گرفته بود از مراعات و ملاحظه قفلت کرده باشد. چون ناگهان متوجه شد که او نگاهش را بی پاسخ نگذاشته آن هم با نگاهی چنان ستیز جویانه و رو در رو و چنان آماده ای آنکه به هر قیمتی شده نگاه طرف مقابل را به وا وادارد که آشنباخ ناراحت شده، راهش را از کنار نرده ها گرفت و رفت. با این عزم که دیگر کاری به کار این مرد نداشته باشد و دقیقه بعد او را به کل فراموش کرده بود. حال این از تأثیر ظاهر قلدرانه مرد بیگانه بود یا از هر تأثیر روحی و جسمی دیگری بیقراری غریب و دور از انتظاری در درون خود حس کرد. بیتابی سرکشی برای دورد است. شوق اتشناک و جوانانه سفر احساسی چنان پرشور، چنان تازه یا از مدتها پیش از یاد برده و از خاطر زدوده که دستها به پشت و نگاه به زمین سر جایش میخکوب شد تا در کیفیت و جهت آن قر این میل سفر بود همین و بس. ولی به راستی همچون آرضزی ناگهانی دست داده، تا حد دگرگونی عاطفی و حتی پریشانی حواس بالا گرفته بود تمنایش بینایی یافته بود خیالش از هنگام کار هنوز نیاسوده از اعجازها و عجایب حراسنگیز و متنوع جهان نمونه هایی در نظر می آورد منظره ای را منطقی باطلاقی، منطقی استوایی زیر آسمانی پوشیده از ابرمه و مه، نمناک، انبوه و ده شتنگیز. دنیای وحشی کوهنی با جزیره ها، ها و دماغه های پر از گلولای تنی نخل هایی می خزبسته اینجا و آنجا از دل آن طبیعت ها از درون گیاهان چرب و گلهای قریب سربر کشیده، درختانی میدید با قامتی عجیب و ناموزون که هاشان را از میان هوا به زمین به درون آینه سبز آبهای راکت فرو می نشندن. آنجا که در میان گلهای شناور گلهای شیری رنگ به بزرگی بشقاب پرندگانی شگفتی آور با شانه بلند و منقارهای بدریخت بر آب کم ایستاده بی حرکت به جانبی مینگریستند، نورهای ببری چنبک زده را می دید که از میان نیزاری برخ می زدند و تپش قلب خود را که از وحشت و تمنایی اصرا را میز میزد، حس می کرد. آنگاه مناظر رؤیایی محف شدند و آشنباخ، سری تکان داده، گردش خود را از کنار نرده سنگ تراشی های گورستان بار دیگر از سر گرفت. دستکم از آن زمان که وسائل و امکانات، برای بهرهگیری از فواید حمل و نقل بین المللی فراهم بود، به سفر جز به دیده ی ای برای حفظ سلامت ننگریسته بود. ای که بر خلاف میل و نظر شخصی گهگاه میبایست مورد استفاده قرار گیرد. بیش از آن به انجام وظایفی که خیشتن او، و روح فرهنگ اروپا بر عهده گذاشته بود مشغول بود بیش از آن بار التزام به کار نوشتن را بر دوش میکشید و بیش از آن از استراحت بیزار بود که بتواند از مشتاقان جلوه های دیگر گونه سرزمین های دور به حساب آید پس کاملا به برداشتی که هرکس بدون آنکه از منطقی خود چندان دور شود، میتواند از شکل رویی زمین به دست آورد دل خوش کرده بود و هرگز حتی وسوسش را هم حس نکرده بود که از اروپا گامی فراتر گذارد. به خصوص از زمانی که رفته رفته عمرش در سراشیبی افتاده بود. از زمانی که ترس هنرمندانش از اینکه کارش ناتمام بمانه؟ این نگرانی که مبادا و پیش از نیل به مقصود و دست کشیدن از تلاش مهلتش به سرایت؟ دیگر فقط خیال محض به حساب نمی آمد که به به آسانی از آن درگذشت. کار و زندگی بیرونیش تقریبا از محدوده این شهر زیبا که به صورت وطنش در آمده بود و اقامتگاه روستاییش که در کوهستان برپا کرده بود و تابستانهای بارانی را آنجا میگذراند فراتر نمیرفت. آنچه آنچنیز آنجا چونین دیرهنگام و ناگهانی به سراغش آمد، به زودی به نیروی عقل و پرهیزی که از ایام جوانی بدان خوب گرفته بود، تعدیل و اصلاح شد. و داشت اثری را که زندگی خود را وقف آن کرده بود پیش از رفتن به روستا به حد معینی برساند و فکر ولگردی دور دنیا این سفری که برای ماهها او را از کارش دور میکرد در نظرش ناشایست می‌نمود و در برنامهش نمی نمی‌گنجید پس نمی‌بایست جدی گرفته شود و با این همه او به خوبی میدانست که این وسوسه از کجا اینگونه پنهانی سر برابرده این میل گریز بود او باید این را میپذیرفت این شوق سفر به دور دست به سرزمین های ناشناخته میل رستن، گسستن و فراموش کردن رستن از کار از مکان همیشگی تلاشی سخت و جانکاه و با تمام وجود البته او کارش را دوست داشت این نبرد بی امان و طاقت فرسا میان اراده مغرور و پابرجا و بارها از و خستگی ای که هیچ کس نمی بایست از آن آگاه شود و به هیچ روی و با هیچ گونه نشانه ناتوانی و سستی نمی بایست به آن اجازه رخ داده شود ولی هوشیارانه تران بود که لجام را بیش از حد نکشند و میلی را که این چونین سربلند می کرد خود سرانه سرکوب نکنند به کارش می و به بخشی که امروز هم همچون دیروز باز ناچار شده بود ناتمام رهایش کنند. چون نه به تیمار آرام و پرشکیب تندر میداد داد و نه به ترفندی ناگهانی از نومی آزمودش و می کوشید مقاومتش را در هم شکند یا رامش کند. و وحشت زده بیمیلی خود را دریافته از حمله دست برمیداشت میداشت. اینجا پای مشکلات فوقالعاده در میان نبود و آنچه پای رفتن را از اومی رو بود تردیدهایی بود برخواست از بیمیلی که به صورت ناخشنودی ارزاناشدنی خودنمایی می کرد البته آشنباخ از همان سنین جوانی فزونی طلبی را به عنوان اصل و هسته غرییه هنری به شمار میآورد. و به همین خاطر هم بر احساس لجام زده حرارتش را گرفته بود. چرا که میدانست این گرایشی دارد که به هر توفیق نسبی و هر کمال نیم بندی دلخش کند. پس حال، یعنی این احساس تغییر شده میخواست اینگونه دست به انتقام جویی بزند که او را با هنرش تنها گذاشته از اینکه بیش از این با شور آتشین خود همراهیش کند سرباز میزد و همه میل پرداختن به صورت و شوق نمودن محتوا را با خود میبرد که حال هنر او به سستی میگرایی سن و سال او دست کم این امتیاز را به او میداد که هر لحظه با آسودگی خیال از استادی خود احساس اطمینان کند ولی در حالی که ملک و ملت هنر او را می او خود از آن به وجد نمیآمد. و چنین به نظرش می رسید که در نوشته هایش از طبع قماز همان که از شادی و سرور نشعت گرفته، بیش از هر یک از مایه های اثر شادی دل هنردوستان را فراهم می آورد، نشانی نیست. از تابستان و روستا هراس داشت، از اقامت در آن خانه کوچک با کلفتی که برایش غذا میپخت و نوکری که غذا می آورد. و از تماشای مناظر آشنای قله و های کوه که بار دیگر کار بیشتاب او را نظاره می کردند، از پیش به خود می لرزید. و این چونین تغییری لازم می نمود. اندکی خانه بدوشی، بلندری هوای دور دست و خون تازه که تابستان اندکی دلپذیر و پربار شود. یعنی سفر بسیار خوب ولی نه چندان دور نه تا منطقه ببرها شبی خواب در قطار و استراحتی به مدت سه چهار هفته در یکی از شهرهای محبوب جهانگردان همه عالم در جنوب دلنگیز چونین می اندیشید که تراموا از خیابان اونگر انداخت آمد و آشنباخ همچنان که سوار میشد، تصمیم گرفت امشب را وقف مطالعه نقشه و کتاب راه نماه کند. بر بررکاب که ایستاده بود فکر کرد نگاهی به دنبال مرد کلاه به سر این یار اقامت کوتاه که چندان بینتیجه هم نبود بیاندازد ولی معلوم نشد او کجا رفته چون نه در محل قبلیش نه در ایستگاه و نه در تراموا هیچ کجا پیدایش نبود.